گفتن میل خواندن قرآن ندارم چه کار کنم؟ حتی اقل روز یک برق قرآن بخونه اقلن یه ساعت ثابتی بذاره در روز دو صفحه قرآن بخونه کم کم میلش بیشتر و بیشتر بشه